بسم الله الحمد لله رب العالمين صلى الله الله الطيبين لا اللهم به نجوم بحث ازدواج در هر در به نظر اغلب وارد شده، گفتن علی چون نوشتن از آیون این موضوع روشن بشه. در این بحث قراظر العرب از کلید یک رواته اساسی است که حالا نسبت داده شده به محمد بن عمران انس صادره علیه السلام یا علی النصر محمد بن عمران خبیث اثر صادره. مشروعیت نسخه محمد بن عمران است. انعبی، انعبی ساده من دیروز از کردم به این, این مستری ای مصدری که الان داریم که بباید درش هست محاسن برقیز بعد که مراجعه کردم به جامعه احادیث در عباب سفر توی یک کتابی به نام نوازر که به علیه امن اسبات نصفت دو دوشده اونجا هم آمده که طبعا این کتاب قبل از محاسن برقیز پس اگر با این اون تفاصل رو که دیروز از کردیم تکمیل بکنیم فعلا اونی که ما میدونیم طبق معلومات ما در کتاب نوادر علی ابن آمده این مرحوم نجاشی هم در شر علی ابن اصوات چند تا کتاب نحن میکنی ولی بله هر کتاب در اصاد داره و میگه ولی هون کتاب و نوادر و همون مشهورون هم. ناس میگه کتاب نوادر ایشان نوادر علی ابن اسوات. خیلی مشهور بوده و خودش هم شخصیت بسیار بزرگی خود علیم از وان شخصیت های علمی بزرگی مثل ابن فضال نمیرسته اما مثل هم اوناسته مدتی هم قطعا فتحی بوده محل کلام که های برگشتی ها اما قطعا جزا فتحیه بوده و انصافاً با تحمل در روایاتش کاملا واضحه که از شخصیت های بزرگی و شهرت شاید کتاب ایشان کتاب نواده ایشان سبب شده بود که فعلا هم به ما مقدار شصیده از فرن یه مدار از اصول که اینا در اختیار محبومه آید محدث نوری هم بوده مدار از کتاب قدیمه اصول وسیده که اهل وجاده هم بوده نه اینکه به اجازه وقتی بعدها حالا باید تاریخی اینا رو چاب کردن در خیلی جمعشون کردن به اسم حلق اصول و ستته اشهر احتمالا بعضش رو کرده باشن ندیدن اگه آن کتابشون هست که خبر دارن این اصول شنزدگانه یکیچم هم نوادر همین علیه ابن اصواته که اصول شنزد احتمالا تلخیصی باشه برید نوادر مثلا 5-6 دارد 7-6 خیلی نیست من به این مناسبت اشرا همه شم خوندن چیز منکری هم دار با این گذشت زمان به یک اشاره می کنم که تاریخ خود این نسخه اون اصل نسخه چی بوده چیجور به ما رسیده به این مناسبت اشاره می کنم و در نوادر بوده، این یعنی نوادری که الان در خدمه هم داشتن که چاپ شده و همین اصول سفت عشر این روایت موجوده پس طبق این قاعده ما اصل این روایت در حقیقت کتاب نوادر علیه اصفات حساب علم ماست اصلش. بعدها این برای تاریخ روایت خیلی برای مؤثره بعدها در کتاب محاسن آمده اینجایشون گفته بعض اصحاب نان علی ابن اصباح ظاهرن مرحومه برقی هم در محاسن مثل ما از نوادر علی ابن اصباح چون محلبی رو که در برقی نرم کرده عین همین نوادره بعد از مرحوم برقی در کتاب کافی آمده او از برقی گرفته چون اسم احمد محمد محمدان خاله ان علی ابن اسبار خب اینا پش سر هم هم مسادر طولی می سبوت علی هم میکنه سبوت نسخه ای این همون همون هست هیچ فرما نمی کنه و پس اصلش در کتاب علی ابن اسبار توسط برقی شده کلینی هم از برقی وقتی در این متنی که الان در نوادر ما داریم که چاپ شده در نوادر و در برقی و در کلینی حتی کلینی که خودش این روایت نجومی رو برده توی ووزه تو روزه. تو بحث ازدواج متعرض نشده در این متن همینطور که دیروز ارز کردم من سافر او تذوجه. هم توی این نوادری که چاپ شده هم توی محاسن برقی هم توی کتاب به صدا اما تا به کافی نُقتی دیگر داره که بعد از محاسبه کافی نُقتی که بعد است در تمام اینها اینطوره مطلب بعدها مرگوم صدوق رضوان الله تعالی در دو کتاب حج و نکاح این روایت رو آورده از این کتاب علیه ابن نباشه ظاهرش اینطوره چون تعبیر ایشون روا محمد بن عمران و طریقی که ایشون در مشیقه کون داره اصلا تو طریق اسم علیه و نیست کلن نیست ولذا بعید نیست که ایشان از مستر دیگه ای هر ایشون در با این روایت با دوم اصنه اورده در ازدواج منتظر وجه آورده در باب شفر من سافر اوتظر وجه اورده این هم کار مرمول صدوق که ریشه کاریشون هم به حسب زاهر نمیدونیم از ظاهر چون ایشون طریقی رو که برای محمد بن عمر نوشته از طریق نحوی امیرو صفوان اینهاست که بسیار طریقه خوبی هم. الکس، صحیحه، هم مشکل نداره چرا یک تعبیر رو روا محمد بن عمر انا ابي انا ابي عبد یه تعریش فهم میکنه خیلی درجی هر دو رواستی که اگه بود باز این چیزی میگفتید هر دو به روا و دو متن آورده فعلا توجیحی برایش ما نداری یعنی یک توجیه بعد درد میکنیم و قول خودون من درابرگی خودون خیلی توجیه علمی درسته حسابیه مایدار ما در این جد نداریم بعد از شیخ صدوق رضوان لا تالا علیه مرحوم شیخ تلسی دو بار این حدیث رو او برده از احمد عشعیه و در یک بارش اسم علی امن هست انبodies اون یک باری که علی هست. اسماعیل بن منصور این تو نسخه قدر علی ابن منصور نیست اسماعیل بن منصور نیست این زیادی رو دارد. در یه بار که امروزی گفته احمد عشری از, اسمه... از اسماعیل بن منصور اسم هسته علی این داخته اینجا واقعی افتاده باشه و ظاهرا در این نسخه اسماعیل بن منصور زیادی باشه چون متعارق هم نیستن کلن نشناخته هست اینچن بگم پس تا اینجا به این نتیجه رسیدی در متن مرهوم شیخ تونسی هم فقط منتظر وجه است. پس کافی سافر او وجه هست فقی هر دو هست تحضیح فقط منتظر وجه است. این تاریخ اجمالی حالا اگر این احتمال رو بگیم که در نسخه که در اختیار تحضیح بوده صحیحش علی ابن باشه وقت به احتمال بسیار بسیار قوی مرجع اختلاف رو میتونیم پیدا بکنیم دو نسخه از نوازر علی اسبات بوده یه نسخه در اختیار احمد اشعری بوده در اونجا من تذروجه بوده یه نسخه در اختیار احمد برقی بوده در اونجا من سافر او تذروجه بوده ظاهرش یه زور زیاد بزنیم و هر دو هم در قومه خوب دقت داریم این هم که احتمال بیدیم مثلا اینجا اشتباه کرده کرد این آنجا آره باید گذاشت کنار بالاخره معلوم میشه اون نسخه علی ابن ریشه بحث رو به ذهن ما که اینطور میاد ریشه بحث به این برمیگرده که در کتاب نوادر علی ابن چون بقیه مثل هم، فقط یکی اسماعیل من منصور در نسخه زیادی داره بقیه ای هم. این همه اختلاف ما این چه ما این هم. یعنی سند مثل هم پس بنابراین احتمال بسیار قوی داره این طور بوده حالا این نکته فنی برای شما یکیش تحلیل تاریخی یکیش ترجیح حالا فرصد شما چناختیم ببینید آزه همک تشید این خیلی خوب مرد در نسخه جناب علی ابن دو مرد بوده. حالا ما چکار کنیم؟ ما با بعد زمان چطور تشتیز داریم؟ مثلا الان متعارف میگن آه کلینی از داریم دحث کلینی مطرح نیست کلینی از برقی گرفته برقی از همین نسخهی که ما داریم از علی ابن اسباد. توی تو این ما هم که ما داریم سافر اوتز اوبر از عزبتیت نیست شیخ از راه دیگه رفته اگه شیخ از راه برگی رفته بود اون محبوب بودیم با همونگه مثلا شیخ تساهل کرده شیخ از راه احمد اشعری رفته در اونجا فقط من وجه هست دیگه سافره نیست روچن شد مطلب روشن شد پس بنابراین مرچه این اختلاف روایات در حقیقت بر به کتاب نوادر علی بن اسباد تصادفا کتاب مشهوری هم بوده خود ایشان هم شخصیت بزرگیه انصافا روایت هم زیاد داره خیلی بزرگواره ایشان انصافا حالا فتحی باشه یا نباشه بسیار شخصیت بزرگواری تحلیل ما اینه این راهی که آقاون رفتن هم کافی از بحث این کافی نیست این مقاله طبق این تحلیلی که ما کردیم یک نسخه ای که ما داریم سافر اوتذرح این نسخه به نحوه و جاده به ما رسیده. اصل نسخه هم بهدادیه علا تقدیر سهر در ابتدای نسخه این نوشته اخیرانا محمد حارون موسای تله اکبری این حارون ابن موسای تل اکبر اکبرهایی که از روستاها و دهاد شهرستانها در اطراف دجنه بوده شمال بغداد نزدیکشان هم تل این تله اکبرها به اصطلاح چون ایشون ملقوم مانتره بوگه ایشون تل میگن اینطور زرف صحیحش این تل اوفرا مرقوم هارون موسای تل اوفری که از بزرگان محدثین ماست که از چهره های کم نزیر ماست مرقوم شیخ طوسی در حق ایشون میگه روایت جمیع اصول اصحاب نو تصنیفات کم دارین تو اصحاب تمام اصول اصحاب رو روایت کرد یکی از خصوصی که ایشون روایت کرده همین کتاب نوادر تیلی که تو از این اصول ست پتر اشتر که هاشه آشت ایشان بباید میکنه هارون ابن موسای طل اکبری بسیار شخصیت بزرگی، و یک مناسبی پیش بیاد یه مرداری بیشتر راجع ایشان پس این نسخه علا تقدیل به نهمی بجاده به ما رسیده علا تقدیر قبولش نسخه هارون ابن موسای طل اکبری به لحاظ اولا شخصیت ایشان تاریخ اون نسخه واضحه که در شورای بحثی که بشه شاید. الان فعلا نمیخوام وارد اون این راجع به این مطلب. دو. از همین علی بن اسباد مرحوم برقی نقل کرده. اونجا هم حسافر او تزوج. برق. نقل برقی اینن با همین نسخه موجود ما میخوره. اینن و ایشاد مستقیماً علی بن اسباد نقل میکنه. این دو مرحوم کلیمی هم نهاروی کرده ایشان هم از برقی نهاروی کرده اینه عبارض برقی؟ بله حالا مطلب که مخواستم اضافتان اینجا اضافت نمی در کتاب برقی این طوره و معذر به همونتون مستقیم اشتباه کردن بعضا اصحابنا ان علی ابن اصبا در کافی اینجوره احمد بن محمد بن خالد که برقی باشه ان علی ابن اصباح. اون بعض اصحابناش افتاده البته شعن کلید میهیم و مقام ایشان که جای خود داره شعن طلبه عادی هم نیست که این کار کنه اما این در حدیث ادهی از انواع تدریس و کذبه در حدیث این بوده نستجیر رو اگر یک سندی زعیف بوده با حذف اون اسم ضعیف سرد رو تصیح میکردن الان شما اگر کتاب کافیر نگاه بفرمایید با خاطر چون برایش ابراهیم محمد بن عمران اون توصیح هست با قطع نظر از ابراهیم اگر شما کتاب رو نگاه بکنید فن معتبره چون یه احمد بغی از علی بن اسوا اما شما مصدرش رو که کتاب محاسن نگاه بکنید در محاسن داره بعضی از تابعان علی بن اسوا این البته هست ما شعر کليینو رو به مراحل عجل می‌بینیم اما این در علم حدیث هست اهل سنت دارن. اگر اگرچه این موردی پیش بیاد یه مقداری دست نگه میگن نکنی ایشان همدرمون بعد از حالنا رو کرده جای دیگه هم داریم یه مشکله ایت که من نیم خواهد شنق طولانیشو بدهم جای دیگه هم داریم که مثلا از کتاب کافیه از کتاب محاسن بریز اسمی هر شده که با حضبون اسم سند معتبر میشه من در این حاجیی که در درای منشییون 256 سال چاپ شده اونجا نوشته این منشأ شبهه نشه من عرض کردم که جوابش بده این رو چون اگه تعامل بکنید در عبارات مرقوم نجاشی بشه جوابش خوشنه درباره محاسن شان زید فیه و نقص اصلا محاسن یه مشکلی داره متن زیاد و نقیصه داره کتاب زیادونه یعنی نسخ کتاب مختلفه اینشالا اگه توضیحاتی خدا توفیداد جلی و مستقلن چونجا حدیث خیلی متوقف بر محاصل نیست یه وقتی توضیح مستقل لعظ میکنم کتاب محاصل نسخش مختلفه احتمال بسیار قوی و راجع و مناسب با جلالت شعن کلینی اون نسخهی که در اختیاری اینشان بوده توش بعض اصحابنا نبوده و نسخه ایشان این عبارتو از این که نياشي و شيخ فرد اسراء در كتاب محاسن زيده بيه و نقس یعنی ما باید مسائل انشاء محاسن و نسخ محاسن یک مقدار حساسیت نشان بدیم خوب دقت بکنید اوچر از کتاب خب ملا ازو فقيه نگفت زيده و نقس و اختلاف نسخ در هر کتابی هستیم اون چیز ساده‌ای نداره که این معلو میشه کتاب محاسن یک مشکلی داشته به لحاظ مجموعه خودش که باید متونش مقایسه بشه یعنی کتاب باید با مقایسه و با شواهد موجودی که داریم حلش بکنیم پس یک آیا این بعض از هابنا مرحوم نستجر... حالا ما واقعا سنگیر ورزیم مرحوم کلینی مثلا عمدن هستش کده خیر با شواهد موجود نسخه مرحوم کلینی توش بعض از هابنا نداشته نسخه ما داره من همیشه ارز کردم خوب دقت بکنید یکی تحلیل مثله یکی آخر نتیجه خب چیکار کار بکنید؟ سوال این بعض اصحاب اونا هست یا نیست؟ یکی تحلیل مثله که نسخه کلینی نداشته و نسخه ما داره یه دفعه ما به یک ترجیح نیم نرسیم مجمن میشه دیگه امرواز مجمن میشه ما بین ارسال و عدم ارسال اون وقت خب معلوم که حجیت بهش اثبات نمیشه آیا واقعی برای ترجیم دارن خب طبیعتاً هم داریم اینطور نیستی نداشته باشیم شیم و اینه که پیش ما چنین اخیراً ثابت عرض کردم ثابت نیست که مرحوم برقی پسر نفرد مرحوم برقی پسر از قم بیرون آمده باشه برای کوفه برای تحمل حدیث این روشن نیست خیلی چون علی ابن اسفار جزء اجله فقها و اولمایی از ذیری زمانی که فتحیل بود بعد در اختلاف در رجوعشه در کتاب نجاشی نوچه را جهنم قل بفطاییه کشی قصه نمیگه لمیه ما تاریخ فطاییه حالا بعد مثلا آیه قوی میگه نه مثلا نجاشی اون آیه تو سر نه اون آیه دیگه اختراف کرده که حق با اواست حالا هر کدوم که باشه حالا من خیلی وقتش واقعشم یه کمی ابهام داره که چون دو تا از احلام فن نوشتن حالا خودمی‌شه درسته به هر حال بلا مدتی فتحی بوده اما قدر مستقلاً نزد فقها و علما و کثیر الحدیث و خیلی هم جدی و این علی اما شواهد نشون نمیده که خود برقی پسر احمد با ایشان در کوفه ملاقات کرده باشن لذا به نظر ما همین نسخه که ما داریم اسح به نظر میرسه نه نسخه کلی خود من تمایلاً به اینه که این نسخه موجود محاصن اسح باشه بعض از باشه جای دیگر اگر من چون محاسن صدا نکردم آقا این تصرب وکرا نشون پیدا بکنه جای دیگر من اگر باشه واسه باشه فکر نمی‌کنن احوال برح مستقیم از محاسن نه از علی بن اسفار نه بله احمد اشعری به کوفه اومده عرض کردی احمد اشعری قدس الله و سره احمد بن محمد بن عیسای اشععی قومی ایشون به علت حد رحله به قول قدیمی ها رحله یا سفر در طلب حدیث داشتن و به کوفه تجیب بردن و از بزرگان کوفه مثل همین علی ابن اصبات مثل علی ابن حسن فضاد علی ابن حسن علی وشا الاخره حسن محبوب از بزرگان کوفه ایشان حدیث نرم کرده و به قوم بردن این هست این واضحه پس تا اینجا روشن شد تا زمان کلینی از این نوازر علی ابن موجود ما یکیه شیخ توسی از احمد اشعری از علی ابن اسباه در یک نهر نهر میکنه اونجا منتظر وجه هست سافره توش نداره شیخ صدوق هم هر دو نهر کرده باشد. پس برابر این ما اگر با این معلومات رو پلا هم بگذاریم تقریبا به این نتیجه میرسیم که اصل حدیث در کتاب علی ابن بوده احمد برقی گفته سافر او در و و انه الکلین لیکن مرغوم احمد عشق گفته من تذر بجه هست از اون برم دیروز و کلم و ان حدیثكم هادا دینون فندرو امن تأخدون دینکا هم این سنیا برقا تو رواتمام متهم باخر هست. سونیا از میشن این گفتن این نیست بعد ما هم داریم اونا هم دارن. نه از سللا از علامای مثلا قرن دوم آن دو سنیام دارن رو سونیا میکنن. من ما هم داریم. فهم و هم من تا خودوند راه چیه؟ اون مهم شیله اون اولش اولا ما تحلیل کردیم که من چه اختلافی شد. پس معلوم شد در قوم و روشن شد. نسخه از کتاب از روایت علی ابن آمده این دو تا دو تا بزرگار قوم قضی شما و انتما رئیس ها بلده ای کما فمن یحکم بینکما و قصه کسایی و دو بزرگار قوم احمد اشعری و احمد برقی از مختر واحد دو جور نرد کردن احمد اشعری من پذر و القمر و فل اغرب بریش اکی حدیث احمد برقی من سافر او تزرزجه ول کمر او فلاغر است. سعدی وقتی همین حدی که ایکر مادرش احمد نرفته این حد میشه بود چی برای اون رفته مثل کلینی، کلینی برده شد که بسیار نهایی رفته معنی که کرده با این معنی موجود ما میخوره من بحث سمت داریم. حالان رفت یا رفته خیلی رفت یعنی من ترجیح رو با نسخه محاسن خود اون میدونیم بعض اصحابونا توش باشه در نسخه کافی ان علی ابن اصباد مباشره دو تا نسخه از محاسنه نسخه ای که در کافی بوده نوشته برقی ان علی ابن اصباد نسخه محاسنی که الان دست ما چاپ شده نوشته بعضی بعض اصحابه ان علی ابن اصباد این بود کدام نسخه ترجیح داره به نظر من نسخه محاضن موجود ترجیح دارم میگید آبا ثابت میده زن نگمان نتیجهش ثابت میمیشه نمیمونه بعد از خوابنا بود یا نبوده میگید نه کافی از باده خیلی خوال فصل باشه این الان برای ما مشکل چون حدیث واقع نظر از اینجرد مشکل دار چون برش ابراهیم امید محمد ابن نحمران دارم توصیح من شد به هر حال حدیث مشکل داره با این مقدار حل نمی. این یک بحث کبرویست برای این که مثلا الان خود مرمون شیخ, شیخ توسی از کافی نمی با کافی که ما داریم فرق داره این در حقیق دونو سر کافیه پس یک این دونو سر کافیه دو ترگیه واکنونی کهیه من به نظر خود من ترگیه با نصف مفروع خود ماست و از از حالونا باشه خب آنان مشکلشون اینه که کافی ازبت خب هست باز که حضرش کن بعضی اصحاب ها رو بعضی به ازبتیت کافی به هر حال ایشون نصخه ناشته دیگه ایشون میگه من اصحاب احمد را از محمد که من در نسخه متعدد میدم در یک نسخه واحد نیدم ایشون از چند نسخه نمیم کنه بعضی اصحاب هنانی و کافی هم ما از بحثی نداری. ما هر نمونه که اون نسخ به ها به نظر ما مخلوشه نسخه سعی هم دیست که ما به ما نسید به قرینه عدب نقل احمد از مشایخ کوفه و بغداد. این راجع به این قسمت بعد این الان اران خیزریز اینجاست و این اختصاص به اینجا نداره ما چیگوری متونه حدیث و تشریف بدیم چون حالا همه آهیمیان بحثای سندی میکنن ما از کلی کرارن عرض کردیم ما نیاز به بحث مرد هم داریم این نیست سنت باشه حالا این چرا بحث مرد پیش ما خیلی مورد اعتنال قرار نگرد این صحبا بحث مرد در کتب ما خیلی مورد اعتنال قرار نگرفته هم از قدیم حالا فرض که این مسئله با مثال علامه یه حدیثی که میاره مقارنه موتونشه نمیکنه. کنه فرص از تحضیب نمی کنه حالا موکنه همون در تحضیب آمده در کافی آمد نه علمای بعدی ما خیلی کم آمدن در حدیث واحد مقابل مقارنه مطمی بکنن از کردم که اولین کسی که انصافا در این جهت سرمایه گذاشت و رسمت وارد این کار شد نه این جنبی باشه مرموم صاحب معالمه این منتقل جمانش شون متون روایات رو با همدیگه مقایسه میکنه میگه این حدیث در کابی این طوره در فقیه این طوره در فرزیب این, این طوره این مق تا دیرو چه ما الان چه نیست. تهدید و مخصوصا که ایشان فرامنده از من تهدیدی که دارم به خط خود شیخ طوسی که الان ما نداریم. این تذکیر اختیار مرحوم صاب منتقا بوده. که این واقعا نعمت بزرگ الهی است این منتقا از این جهت بسیار نعمت بزرگی است چون ایشون احادیث با با نسخه خط خود شیخ توسی تصریح کرده. صاب منتقا قرر مشکل کار این است که ایشون کل احادیث رو خصوصه صحیح و حسن آورده فر احادیس و برای ایشان منتظر شما ضعیف و موثق نمی ورزه ایشان بعدم خود ایشان عمرش که نکرد نکرده تا خود عواله حج نروشه بقیه ابواب نه اگه کل فقه ما رو می این بررسی و انجام میداد کار خوبی بود اما این کار درزی خیلی دنبال نذیدن که خیلی بذیا تکوکی الا رسما دنبال نشود این کار این کار کاش دنبال میشد با صاحب وسائل کامل ایشون رو نسبتاً روی مرد متصاحب یعنی نسبتاً اعتناعی نداره من تقدیر به تساهل میکنه این از تساهل خود بنده است متصاحب نیستن و مبنا شده این بود اعتقادشون نیم بود تساهل بهش نمیشه بود صاحب وسائل شدیه و مرد نداره کار نکرده من از کنیم اگر بنا بشه تحریش از وسائل بشه و اختلاف متون به دقت رد بشه حدود 90 درصد موارد اختلاف متن تو وسائل نیامده 90 درصد خیلی نسبت خیلی بالاست نسبت کمی نیست بیشتر این قسمت اختلاف متن ایشون نداره حالا اونم معناشون بوده از کردم من توضیح دادم تصاور تعبیر نکنید ما مثال‌ها فرض مرحوم صدوق در اون من جدده قبرن خدده قبرن جدده سه قبرن جور مثلا مشاهی خوندن اسم میبره برقی اینجور خونده سفاری جو خونده بودم بعد میشون که هر سه که را هر سه جایز نیست یعنی توی یه مرد چون قائل به حجیت تعبدی یک نهی از حجیت تعبدودن میگوستن این هم سند داره این هم سند داره, هم سند داره. هر رو قبول میکنه هر جور قبول میکنه این هم سند داره من سافر پس سه تا کار دو ت... سه تا کار اینجا شده کلینی من سافر اوتذر و شیخ توصی منتظر زن شیخ صبو هر دو هر دو متن یک جا سافر اوتذر و یک جا تگزان دقت کن شما ممکنه چه بکنید؟ بگید نمیشه آقا متن دیگه یا اون یا اینه دو تا متن دیگه میشه درست باشه یکیش بود ترخیص از دیپرتس و سافرت از اول یه جوری ترخیصش کرده اما مرحوم اینطور که به شما عرض کردم روشن شد حالا این یک بحث خیلی از کردم حالا من چون نمیخوام واسه این بحث بشه پس اج اجمالا اج... اج... اج... فرض یک نکته دیگر از زمانی که شماها در حوزه غالبا دیگه درس های اصول بالا رو میخوای از مصراصات مثل مثلا در رساله ذهن واسون باشه در اول حجر خبر باهید یک خبر رو از سه جد برسید میکنی که صدور که بحث از سند و مثلا رجال این هاست یکی هم دلالت و یکی جهت صدور که های است، نه مثلا متن نه باید تو رسائه ولی ازا شماها هم همچین گفت لا شعوری هن، ارتکاز هن این یکی از اولی که مثلا دروس عالی شروع میشه مثلا رسائل و بحث نهایه و بحث مثلا مرحوم آقای ناینیو مرحوم عسالای خوئیو نه نه نه این هر چی شیخ نوشته دیگه متعرض بحث متن نشوید که شما احترامی روی متن نذید بشه که متن چی آخه این معلوم میشه که به این سادگی ها که ما فکر می میکنیم نیست کلینی اون متن آورده شیخ متن دیگری آورده و صدوق هر دو متن رو سوال اینه ما چه راهی داریم؟ حالا بگو مارو سنت بنا شو و جالو می‌جالونه فریس و میریسونه. ما چه راهی برای شناخت متن داریم؟ کدوم متنو ترجیح میدیم؟ آیا متن اصلی من تزریق بوده یا متن اصلی من سافر او تزریق بوده؟ پس مهر راهمونشی سؤال. به همین مقدار که بگیم کلیه از بس از یا صدوق از بس یا مثلا شیخ طوسی بعد از همه آمده ایشان یا به همین مقدار که بگیم آقا ما احمد اشعری گفته من تزل بچه احمد درغی گفته من صافرا و تزل کتاب هم یکی کتاب علی بن اسوار به قول اون میشه معروف اون جمع شسته‌خانن جمع می‌شسته دان چون نیست حاجی حافظ چون بالاخر ما دیدیم کتاب چی بوده این دو کتاب دو از کتاب ما یک حالت تحیل پیدا می کنیم که آیا متن اصلی چه بوده؟ خب یه راهی که حتما کلارنش می بین می اگر دوران هم شد بین زیاده و نقیصه اصالت و زیاده مقدم بر اصالت عدم نقیصه هست یعنی این احتمال که مثلا کافر زیاد باشه این خیلی احتمال ضعیفی اما احتمال این که اون منتظر وگه توش نقص باشه قوی لذا با این اصل اغلایی میگن همون متن کلیری قبول می‌کنیم، چون با اثار تعداد زیاده بهتر میتازه من ارز کردم حالا اگه برترمان من چه اصل اغلایی من نیمیم چه اصل اغلایی این اصول باید اغلایی باشه اجمالا در بعضی از موارد ما داریم اما اینکه رجوع بکنیم بارمان یک اصل و او فکر نمیتم ثابت باشه بعد از کردن این کتب ما روایات ما و علم و انه حدی می نشستم بررسی میکرد نسخه شناسی میکردن نسخه این نسخه, ای، نسخه اون اینا رو به همدی مغارمه میکردن بعد با یک آداب یه حدث این حالا با اینطور نبود که مثلا یک کتاب جلو باشه بعدی من نوشتم یادن می کلمه نوشت یا نوشتم اصل اینکه زیادی نوشته باشم خیلی قوی نیست اما اصل اینکه کم کرده باشم قوید این حرفا خیلی ریشه ایید ا روشن نیست در کتور مهمه، سالیان اگر هم برفرزم تا یه حقی اغلایی باشه در نرشتهای خودمون خودمون اما در کاری که بزرگان از خواهر مخصوصا دو شخصیت بزرگ یکی احمد اشعری به یکی هم احمد بردی البته دوران هم بین این دو شخصیت بزرگ میشه احمد اشعری اجل دو شعننه بلادشتا فوق العاده جایی بگر احمد اشعری و دقیق فوق العاده دقیق در حمیدیس بلکه همین احمد اشعری و احمد برقی از خود بیرون کردن بخاطر تصاحل در حدیث از بعدش رو برگردون اوصایی کردش یکی از کسانی که از خون بیرون کردم یه احمد اشعری برقی بلا و عکس یعنی جلالت و انصافا ما کار دالا به اون اونجات سیاسی این بیرون کردن ها و ترویجان در حالا اون جای خودش بلکه خودی که الان با مطرح پیش شما بلا اشکال احمد اشعری اجل و در حدیث بلا اشکال و بلا شده خب یک راه همون راه بود که از ساعت زیاده اگر اون باشه ترجیح با نسخه بردیه یک راه این که جلالت شعن احمد اشعری اختضا میکنه که ترجیح نسخه ایشان بده. این راه های متعارف اصحاب را دارم عرض میکنن یه راه این که کافی از بکه مثلا اما به نظر ما انصافا اون چه که به نظر ما مهمه میتونه یه مقدار زیادی کارگشا باشه تطاوای اولیه اصحابه هر خیلی میتونه کار گشا باشه خوب دقت بکنید چون من هر کردن این از خصائص فقه ماست اشتباه نشه نه در فقه حنفی از نه از. هیچ فرقی نیست در فقه ما یک مرحله نصوص داریم و فقط فت... روایات اهل بید. یک مرحله انتقال به فتوا داریم انتقال نصوص به فتوا داریم یه مرحله من بعد فتاوا و تطبیقات الهی این مرحله ای انتقال نصوص به فتاوا، این از خصائص فرقه ماست و خیلی عرضش منده. در این مرحله ای انتقال که این مرحله ای انتقال از نصوص به فتاوا، تقریبا از در تاریخی از دیدیست شروع میشه تا حدود چارسد از در تاریخی از 400؟ 400 داریم اما اون روحش و زیر برنه از تا چهار سر و پنجاب از تا چهار انتقال از مرحله نصوص به فتاوات در این مرحله غیر از اینکه انتقال از نصوص به فتاوات چون در این مرحله الان با درجاتی که دارن خیلی مقید بودن خوب دقیق کنین فتاوا این نصوص باشه حتی تخریع هم ذکر نمی کردن حتی به قول مرحوم شیفتوسی قدس الله سر رفت در اولی ستا محسوس حتی لفظ جا, جا کردن اینقدر دقیق بودن مثلا اگه در روانی انا بود انا بوده مثلا به کار میمون مثلا اختر زرد که مثلاً. نه همون لفظ انا بوده کار اصلا میگم لفظ اون در اول محسوس در مقدمه ایشون بگه از خورما اینقدر مغیله به نصوص که اضافه بر اینکه که از نصوص خارج نمیشن تطریق نمی کنن حتی لفظ نست هم پسیه یه مرحله هر در فقضی شیعه که این خوب مرحله خیلی اساسی یعنی این میتونه تا حد زیادی کار بشا باشه و از که این به لحاظ تطبیقی هم اولین مستلی که ما در این جهد در فقضی شیعه همین کتاب معروف فرحان رضاست که چون چند در فروزی دارم یه این روز حال توضیح داره چونم وقت میگذاره این برای انتقال به حسوس به فتابا خیلی تأثیر داره. و بعد کتاب خود شیخ صدوقه تا حد زیادی مغنعی شیخ میگم تا حد نیزد چه اینا یکی مقداری نصوص دستکاری مختصری کردن تا مرد می بشه مرحوم صدوق در کتاب مغنع خودش همین مقدار دستکاری هم, هم نکرده من دیده خدمتون توضیح شاید کردم. شما هم الان میتین تجربه رو انجام بدین که کار خوبی هم هست لطیب هم هست برای تجربه اتباهتی خودتون قدم اولش خوبه. اینا می آمدن مطرون فقیل و مقابلشون می داشتن مکررها را حرص می کردن. اون حدیثی رو که قبول داشتن علامت می داشتن سندش حرص می کردن مطمیشون می آهدن. این متون پشت در می شود متن سطح معصور یا منسوس یا با قول مرام بروجیدی قدستان با و شریف اصول متلقات مرادیشون از اصول متلقات یعنی فتاوایی که به اینها از اهل بیت عرض شده چون من ارز کلمان غیر یک تحبیر هم بنده گفتیم از تحبیرشون یک تحبیرم بنده آوردیم گفتیم ادره از خودمهای ما به نحو تلقی بوده بعضی همگاهی تبنی بوده تبنی استدلال، تلقی نه برمیگرده به امام سهبات الله سلام و حالی ارز اگر عمل گذشتگان ما تلقی باشه بسیار خوبه تبنی باشه هم رجال و رهن رجال این مغیره به تبنیاتون را نیستیم تشخیص صغ که شیخ طوسی در اینجا یا تلقیث یا در اینجا تBunis این مشکله. من انصافاً من قبول دارم مشكله اما اگر اثبات بشه کارگوشاست این مطلب کاملا درست پس ببینید کتاب مغنه شیخ مفید هر مغنه شیخ مفید با مغنه شیخ و شیخ صد تقریبا مصور رو تعلیم هم آورده شیخ مفید اینا مثلا جانجور شده تا متن تغییر بشه شما هم مثل مثلا جمال میگه هر باب جمال احادیث احاضیت مکررش کنار بگذاریم میمونه مثلا از این بابی گی بیست حدیث بود اون که اونه هشتا که قبول نداریم این کنار بگذاریم مثلا چی شده قبول نداریم دو دوتا سند رو برگذارم مثل حدیثی میارم اینا رو پلوه هم میذارم میشه مثل فطحی محصول وقت این بزرگانه اصحاب ما در اول نوشتن کتاب پیشون اینجوری بوده. چون تجربه خودمون توی تخونه شروع بوردیم از اول جامعه احادیث یک دور فقه رو این تبیین فقه محصول فقه محصول یک مهم. مثلا مغنه شیعه صد عبارت عبارته فقه همینطوره شاید در فقه موارد تنی خیلی کم باشه چون ما گفتیم بعضی‌ها تنی داره خیلی کم باشه خیلی شر طولانی میخواد نه حال و متواله نه وقت این کاره اما درصد یعنی الان شاید ما مثلا حدود 15 تا بیس درصد مطومی که در فکر رزا آمده ما در روایات پیدا نکنیم اما قصد داری میشه از روایات برده به ما نرسیده فکر این مقدار دقیق محنه شیخ صدوق هم همینطور رساله علیه بازه هم همینطوره اینا که چیه کاملا بازه متون چون به اینا در بودوده اون وقت دقت کردیم حالا ببینید ما روایتی که از محمد بن همران داریم برگردیم به روایت این از امام سابق محمد بن همران یک متنش من یک متنش من ساخره او تذوجه روشن شد؟ دومن اون وقت ما ارز کردیم یه روایتی بقید اینجا خوندیم اگر دیوزیادون وارکتون باشه یه روایتی دیگری هم در اینجا خوندیم منصوب است به امام هادی صلوات الله و سلامه علیه در اون که منصوب است به امام هادی که از کل مرموم شیخ صدو در کتابهاش اوورده اون روایتی که از امام هادی صلوات الله و سلامه علیه آمده خوب دقیق بفرمایی که احتمال چون روایت امام ساده که از کردیم نسخش مختلفه دو نسخه ادام پیدا کردیم اما اونی که از تمام حدیث از امام چون این میخوام بگم روایت امام هادی در جامعه ما جا افتاده بود چون هم عبدالعظیم حسنی که راوی این روایت در انزوای زندگی میکرده هم به اصطلاح راوی از عبدالعظیم سهل بن زیاده که اینم وضع روشی ای نداره خیلی در اونجا داره منتظر وجه و القمر و فل اقرب خیلی عجیبه یعنی همون متن اشعری توش صابر نداره دقیقاً در مثنی که از امام هادی حالا آیا واقعا چون میشه این مصدر به خاطر مطلب ما سال در سال مثلا 1450 فرموده باشن بعد که شیعه به صورت نشوده چه ما این شوشی مساله عرض عرض برای ائمه اینجایی که ما آن داریم البته روایت امام حادی بینیم وضوع نیستندی و مقدار یعنی حجمی که روایت امام حادی داره حجمی نیست که بگیم تو جامعه شیعه جاوب افتاده. چون شیخ صدوق و یک استاد مجبور و اونم بعد از بن جعبر اسدی و اونم سهل ابن زیاد و خیلی ابحامه یعنی افراد یعنی که مشهور در جامعه نیستند اما احتمالا نقل شده بر در کتاب فقه و که اصلا این خیلی میتونه در اینجا تحصیل موشه که در این جلد 25 جامال احابیس سفحه 151 که آمده ایشون تحبیرش اینه وطق تزویج علاقان الغمر و فل اغرب این طلب تبنیه یعنی این فتوای خود فقه و رزا فین نعبا عبدالله قال من تزد وجه برقمر و فل اغرب لن یره خیرن عبدالا تو این نبا عبدالله آقا ها توش سافره نداره اون محط میگی در که فردزا آمده خوب روشن شده در محط نشف فردزا سافره نیست و خودش هم فتاش خصوصه یکی بحث سفر رو در که فردزا نداره البته بحثی احتمال میدیم بله علم و شما چون من خیلی اعتقاد عجیبی که قرزا و نظارین دارم اعتقاد داریم بله اعتقاد داریم که ایشون روایت رو به این مرد می دیده مردی که ما الان داریم یرال حسنا توش ابدا هم نداریم من بخلاق این آن که در مرد کار نمی کنم معتقدم در مرد کلمه کلمه مرد روش کار بکنه چون این کلمه کلمه اون روش ترده یعنی که خیال بکنی این که داره لنگر خیرم یک اون توی متن مشهور ما لنگر الحسنا دو عبدا داره تو متن ما نیست این احتمالا روایت دیگری باشه بلید میدونی مرحومه حالا مرحومیان و مرحوم سالت وارزه کسی باشه این در روایت تصرف کرده باشه چون این مقدار تصرف در روایت نمی کرده روشن شد احتمالی که من دیدم به حسب اون زومی که من دارم با این سالت وارزه ه معنی که در اختیار اون بوده، شاید روایت دیگری بوده. منظر وجل قرنوافل اقرط لم ير خيرا ابدا. یکی کلمه خیر، یکی کلمه ابدا. این دو تا توی متن محمد نهمران نیست. خب این یک شاعر بسیار قوی که حق با احمد اشعری است. سافر توش هست. بعد خود مرحوم شیخ صدوق خوب دقت کنید در مغنه خیلی عجیبه. در ثغی هر دو رو آورده بود اما تو مغنه اداره ولا تتزوج والغنر فلأقرر فنهو مد فعل ذلك لم يرن حسنا این لم يرن حسنا متن عبارت محمد نهمرانه عمرانه لم يرن حسنا خیرن ابدا خیلی دقت ها لم ير خیرن ابدا گفت لم ير حسنا این متن روایت محمد نهمرانه این هم خیلی عجیبه ما اینجوری نمیگم دانی در صدوق هر دو مرد آورد. خیلی عجیبا. هر دو از محمد نامراه. اما تو موقعه محضن سفر رو دیگه نیابرد. خیلی عجیبه. یه هم بزاید عجایب در محضنی که در موقعه هست فقط تزرزجه رو آورده. با اینکه خود ایشان در فقیه تا فتواهی ایشانه. در فقیه هر دو مرد در دو باب آورده. اما در کتاب مقنع که خصوص من و جوابونده مقنع ورد فاقی لا عزیز عزیز و در مقنعی دلاغ؟ مغنق... کتاب محاسم مقنعی شیخ سلطوسی هم ببینید شیخ مفید لا ین بغیره ان و الخمر و فل اغرر ف روی رویعن سادق علیه السلام انهو قال من تعل ذلك لم ير ها نظر اینها روات محمد بن عمره بعد شیخ سوسی هم در نهایه بعدن در خطاوای اصفهان همون پیدا کرد هم. من تذکر با بمضمون روشن شد. این من که برای شما عرض کردم که این باب بشه برای کل رواشی شیعه و ذهواتی که در اینجا پس روشن شد که انصاف قضیه حق با احمد اشعری مثل من و است نه من صافر اون تذوجه است احمد اشعری حسنا رو نهم نکرده بوده, بوده چرا؟ حسنا لمیال حسنا لمیال خیرونه ابدا فقط توزده برو رضا آمده اصلا الله علا محمد اگر بیانده هر قطعه بشه شمهنده بیشتر قطعه شده.